معمولا کارهایی که لازمه انجام بشه یا تمام بشه نمیشه به راحتی قتش کرد و کرد. اگر از کارهای لازم هست مثل شغلی که منبع درآمد هست برای زندگی زن و بچه نون زن و بچه رو در میاره حالا به دلیل شب شده که این کار نیست که بده تا کار دیگه پیدا نکرده نه این رو کنار بگذاره. همه کارهای همطور حالا پس و پیشش به جای بر نمی میخوره. اگر رسید به اینکه این کار صلاحش نیست خب بذاره کنار. معمولا ان انسان عاقل اینجوری دیگه کاری انجام نمیده مگر اینکه وظیفهش باشه و لازم باشه. و اگر کاری رو انجام داد، قبلش حتما پس پیشش رو می بینه با مشرت، با دقت، بعد شروع میکنه. اینکه ا که از کاری رو شروع نمیکنه مگر موارد لازم رو چون یه کار مهمتری داره و اون ئله خودسازیه بدن ما طی هفتاد هشتاد سال بالاخر گذران زندگی از بین میره. اما روح ما قبل از بدن ما بوده با بدن ما هست و بعد از بین رفتن بدن ما هم هست. ما برای عبد بهول علمه توطبایی خلق شدیم. برای عبد باید فکر کرد. این مدت زمان کوتاهی که در دنیا هستیم قرار هست که برای عبدمون توش زندگی ابدی رو درست کنیم. خدا این لطف رو کرده در این مدت زمان محدود و کوتاه چند سال عمرمون تو دنیا، زخیره کنیم کارهایی رو و مهمترین کار فهم روح هست توجه به روح هست این وجودی که بالقلح همیشهگیست باید بهش توجه کنیم ببینیم نیازش چیه به نیاز اون مشغول باشیم بدن هم خوب نیازهایی داره مقداری باید به اونم متوجه بشیم و کارهایی رو برایش انجام بدیم، اما کار اصلیمون حواجیه و رو هم اون رو بعد پیش مفید